بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين و آله و صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم درسوية سورة يوسف عليه الصلاة والسلام آية شهل نو فرمودي الله جل شأنه ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس و فيه يعصيرون ثلاثة عليه السلام والسلام مجد ميدة 15 سال برنامريزي براية پادشاهية امپراتورية مصر 7 سال باید به کشت و به دام خودشون همیت هم بدن 7 سال 7 سال دیگر خوشحالی میشه که در اون خوشحالی باید از اون چیزی که ذخیره کردن استفاده ببرن بهره ببرن دلیل وقت حواسشون جمع باشه نوع بهره برداری از اون محصولات بعد از اون از خوشحالی دوباره موجدی هست بر اینکه بارندگی دوباره شروع بشه حاصلخیزی دوباره شروع بشه ثم یاتی من بعد از بعد از چهارده سال همیشه بعد از سختی خوشی هست انسان نباید عجله بکنه مثلا این داستان یوسف داستان صبره الله بهمون به صبری داره یاد میده چگونه باید صبور باشیم تک تک مراحل شما آیه با آیه صفحه به صفحه از سوره یوسف میخونید انواع مجدگانی رو میبینید در مقابل صبر. حالا خود یوسف در مقابل اون زنان، در مقابل اون زندانش در مقابل اون برادرانش داستان خود یوسف یه طرف و اون تقدیرات الهی که الله مقدر کرده از انواع روزی حالا چه سختیش و اون سختیش اون خوشیش به جای خودش مثل همین قضیه خوشحالی و حاصل خیزی؟ خب مجدگانی هست بعد از اون سالی خواهد اومد حاصل خیزی خاطر اون بارندگی یوغاث و ناس غیف بارانه عبره به عب گفته میشه غیف به باران گفته میشه غیف چون از غوث میاد از کمک میاد از یاری میاد الله اغافه میکنه یعنی مردم یاری میکنه با اون بارندگی چون بدون باران روزیا قط میشه فی یوغاث و ناس مردم یاری میشن و فیه یعصیرون ما گفتیم انواع نگهداری را بهشون یاد داد خوشه گندم در خود خوشه گندم نگهش دارن رطوبت نزنه آفت نزنه میوه هست نوع برداری از میوه این که به فکر نباشن که میوه ها را فقط بخورن همونطور تازه و رسیده فقط استفاده بکنن نه اون میوه ها هم باید به نحوی زخیره بکنن آلا یا با همون دوشابش گرفتن حالا چه خرما چه انگورش تبدیل به دوشاب کردن تبدیل به مربا کردن انواع بهره برداری از اون شیرها از میوه های مختلف و فی اون عصر یعنی چکیده کردن عصاره کردن از اون روغن زیتون گرفتن عصاره هست دیگه روغن زیتون عصاره از خود زیتونه اهمیت انواع این حالا از روغن گرفته از انواع دوشاب گرفته شیرهای انگور انار گرفته اینا همه بهربرداریه زخیره سازیه اندوخته کردنه باید شما اندوخته بکنید اساس تجارت اندوختگی انسان یک مالی رو نگه می‌داره و بعد به زمان مناسبش میفروشه نه که احتکار بکنه که به دست مستمندان و اون محتاجینش نرسه نه بحث تجارت، بحث زخیره کردن و نگه داشتن و در ازای اون نگهداری فروختنش با قیمت اون مناسب روزش و بعدم مسئله به روز فروختن مهمه بعض از تجار ادبیات تجارت نمیگم بلد دیستن یه کمی شاید مثلاً وواسی به خرج میدن جنسی خریدن جنسی خریدن با عرض بگیم و دلار بگیم خریدن ده دلار خریدن خب اون موقع مثلا پنج سال پیش اون جنسه رو خریدن یا اون ماشینه یا اون هر کالاایی که باشه خریدن ده دلار بوده ده دلار اون روز بوده یک میلیون تومان من بلفرزدم داره میگم ولی الان ده میلیون میشه 10 دلار بلفرد خب الان این جنسو یک میلیون باد بفروشی یا 10 میلیون باید بفروشه باید به نسبت خرید مجددش نگاه بکنه نه به نسبت اون قیمتی که خودش خریده چون ارزش پولش اومده پایین بخواد یک میلیون بفروشه چطور میخواد دوباره همون کالا بخره دوباره بفروشه برای مردم این بحث تجارتته بحث نوع خرید فروشه که ما باید یاد بگیریم ازش میخری میفروشی که دوباره بخری دوباره بفروشی نه اینکه تو بفروشی بعد دیگه دوباره نتونی بخری این سلسله کار تجارت و قال الملك اتونی به وقتی که این نوع تعبیر و این نو راهنمایی دلسوزی برنامه ریزی پادشاه مثل از یوسف میبینه تقاضا میکنه و قال اتونی به دوبار این قضیه اتونی به رو ما اینجا در سوره داریم دوبار پادشاه ازش میخواد. کی یوسف رو برای من بیارید نکنه یک حالت التماس اصرار داره خصوصا دو بار داره تکرار میشه حالا اینجا بار اول دلالت بر چی میده قال اتونی به بیاریدش برای من حاجت پادشاهان به علما و پیامبران الهی اون کسی که ارشادشون بکنن راهنماییشون بکنن پادشاه نیازمند اون عالمه اون عالمه نیازمند پادشاه نیست تو زندانش است میخوره، میخوابه. محتاجش نیست سرش دلک خودشه باید بدون اون پادشاه که محتاج این علماست باید بدون این نیاز را باید در خودش ببینه و باید دنبالشون باشه العلم و یکتا اله ولا علم باید تو بری به طرفش تو باد نیاز خود در اون علم ببینید به طرفت که نمیاد الان اینجا الله سبب کرده که اینجا نیاز خودشون رو دربار بدونن که ما نیازمند علمیم نیازمند اون عالمیم که بیاد ما رو را راهنمایی بکنه اگر این عالم نبود بدبخت میشدن خار و ذری می حلاق میشدن اصلا الله به دادشون رسون با این پیامبری که فروخته شد و خریده فروش شد و تو شو هاش الله نجاتشون داد رحمتی بود برای اونها در مصیبت دید بعضی از مصیبت ها رحمت برای امتی بعد از سختی ها راحتی برای دیگر برای پدر و مادر و برای همسر و برای فرزندان سختی هست ولی آخر عاقبتش به خیره. الان مثلا اینجا یک قضیه خانوادی اگر ما بخوام در نظر بگیریم یک رحمتی برای امتی یعنی دین الله الله میخواد بگه ناکه دینم شرعم چقدر محکمه شما مثلا برای تعدد همسری دوزنی سزنی همه جامعه بد بینه همه بد نگاه میکنن همه تعنی میزنن به اون کسی که مثلا همسر دوم میگیرسه می, می حواس بازه این نمیدونم فلانه هزار تا تهمت بهش میزنن ولی شرع الهی نگاه بکنی این برادران یوسف که از همسر اول بودن و این از همسر دوم الله تشریع کرده که چند همسری باشه چه در دینت یهوه چه در دینت اسلام فرقی نمیکنه در همه ادیان این قضیه بوده این چیزی که بده الان شما نگاه بکنید همون یوسفی که از همسر دوم رحمتی شده هم برای برادرانش هم برای ملتش, هم برای ملتش، الان قحطیه که از اون دوخته های گندم بهشون بده دین الهی رحمتی. همون امپراتوری امیسر که مردم فلسطین رو تحقیر می کردن الان محتاج همون یوسفی شدن غریب غریبه ها رو به چش بد نگاه این افغانه این نمیدونم بلوچه این نمیدونم پاکستانی محتاج همین خواهی شد مغرور به خودت نشو به خودت ناز خلق خدا را تحقیر نکن به اصل خلقت خود نگاه کن تو آب بودی اونم آب بود فرک نمیکنید تو هم دیگه بس دین شریعت الهی اینجا الله میخواد جله بده دین رحمت الهی دین رحمت و رحمت و وسطحت كلشی همه اینجا هم این رحمت الم می‌کنیم در یوسف و در شریعت دین الهی که چگونه با حکمته ما فقط به یک زاویه کوچک تنگنایی و دلتنگی رو نگاه می‌کنیم که یوسف بچه بود و فروخته شد به یک زاویه فقط نگاه می‌کنیم به اون ای که الله قصد داره و تشریع کرده اون حکم رو نگاه نمیکنیم اون زاویه بزرگش که چقدر این دلتنگی سبب گشایشی سبب نجاتیافتن یافتن امتی از بلا مصیبت شد این درس دیگری از درسای یوسف و ماجرای بردگیش و فروختنش و اینجا تعبیر خوابش و بعدم علمی که بر اون تربیت شده از پدرش و از نیاکانش گرفته فل مجااهر رسول قال جع ال رببی که فصل و معبال و صف فلا رسول رسول کیه ساقی اما که نجاتی از زندان ساقی اومد نز یوسوف که پادشاه تو را می خواهد، پادشاه تو را میخواد لا مجااهر رو پس رساد. بربرگه به پادشاید اینجا یه قسمت قال هرجه رسول الله صلی الله علیه و آله میگه بی در تعجبم شگفتم از صبر و حلم و بردباری یوسف. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه میگه در تعجبم از صبر یوسف. یعنی رسول خدا برای خودش یوسف را الگو میگیره. الله اکبر. خاتم النبیین، سید الانبیاست. با اون مقامش، با اون شرفش میگه یوسف الگوی من در سب. من و تو چی؟ که ذره‌ای صبر نبردین. الگوی من میگه. میگه در روایت میگه "یرحم الله لیوسف" لو كنت مكانه لاجبت الداعي ذروات اللي اجبت الرسول اججاش بودم جای یوسف بودم این همه زندانی کشیدم بدبختی و ذلت کشیدم الان مجدگانی داره میاد اون پیام آور پادشاه اومده که بیا از زندان بیرون دربار پادشاه باهات کار داره میخواد پست من بهت بده بعد میگه نه من از زندان خارج نمیشم بعد میگه چی من از زندان خارج نمیشم من اینجا نشستم اول تا این تکلیفو کن در پرونده ی منو باز چرا من زندانم چرا من زندانم از خودش مطمئن نه کار بدی نکرده از خودش، از سریرهش، از میانه خودش و الله مطمئنه که جرمی جنایتی مرتکب نشده بس اینجا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم این قسمت از آیه را برای ما فلما جاء الرسول را اینجا برای پررنگش میکنه از صبر و حلم و بردباری یوسف علیه السلام این همه زندانی کشیده الان اومده آزاد بشه و مجدگانی دارن بهش میدن که بیا پیش پادشاه میش میگه قال ارجع الى ربك بر بگرد به پادشاه به گفتی گفتین کلمه رب به معنای سید میاد معنای سرپرست میاد اینجا به معنی همون پادشاه که مالک اون ساقی بود اون ساقی براش کار میکرد در قصر میگه بر بگرد به پادشاه فسأل هما بال النسبه بگو اون زنان برای پرونده رو باز بکنه اون زنان که توطعه کردن ما رو به زندان انداختن قضیه شون چیه؟ نگفت زن عزیز عزیز مثل زلیخا اسم اونو نمیاره بیمیان میگه زنان اون زنانی که توطعه کردن قضیه شون چیه؟ چرا اینجا یوسف اسم از زلیخا رو نمیاره او, او اسم از عزیز خب علم میان اینجا برداشت شای را میکنند مثلا میگم که اینجا چون منت داشته زلیخا بزرگش کرده جای مادری را به گردنش داشته نخواست اون عزته و اون کرامت را زیر پا بذاره الله داره بهمون یاد میده کفران نعمت نکنیم خوبی ها را به چش داشته باشیم یک بدی دیدیم خوبی ها رو زیر پا نذاری اینجا یوسف حلمش بردواریش در مقابل اون زلیخا این عذیتش کرد به زندانش انداخت ولی با این وجود یوسف علیه او را متهم نمی کنه خاطر خوبی که احسانی که در حقش داشته امون جایی که عزیز به زلیخا میگه اکرمی مثوا او را خوب تربیت کن بهش برست این رسیدگی را فراموش نمی کنه یوسف اینجا نه از رسید که به زنش میگه باهاش خوبی کن و نه هم از خوبیه زنش همسرش وقتی که بهش خوبی میکنه نه اون کسی که گفته خوبی کن نه اون کسی که خوبی کرده زیر پا نمیذاره فاششون نمیکنه میگی اون زنانی که توطه کردن برید میگه که چرا م رو به زندان انداختن چرا توطه کردم و علیه من سبب شدم من زندان بیفتم التی قبحدیگه هون اون زنانی که دستشون بریدن آدرس میده پرونده ای رو باز بکنن نگاه بکنن اون کسانی که دستشونو بریدن چرا دستشونو بریدن این نرببی به کیده پروردگارم به مکر اون زنان آگاه عالم میدانه اونا مک کردن به ربی بکیدهن این نهایت اعتماد و توکر بر الله الله عالم هیچ چیزی را ذره ای از ظلم را رها نمی کنه یک روزی الله انتقام اون ظالم را از اون مظلوم خواهد گرفت الله ذره ای از ظلم را چشم ازش در این دنیا اون شخص جزا و سزای اون کردار بد ناصحیحش ندید بدوند که آخر عاقبتی در آخرت بد خواهد داشت رسول الله صلی علیه و سلم میفرمایند حیوان بی شاخ از شاخدار از شاخدار انتقامش را میگیرد که چرا بهش شاخ زده رب العالمینه حاکمه در اونجا قاضیه بین خلقش نه بر انسوجن بلکه حتی بر حیوان حیوانات هم در صحنه محشر قصاص همدیگه رو میگیرن حساب و کتاب میشن حتی حیوان حیوان بیچاره چه برسه به من و شما این نکنید بحث محاسبه است خودتون محاسبه بکنید حتی در رفتارتون با حیوانتون چه برسه به فرزند چه برسه به همسر ظلم تاریکی است ظلم ظلمات الله به هر مکری آگاهه الله به هر مکری آگاهه این, این زنا توته کردن گفتیم اونجا ربی به کیدهن کیدشون چی بود الله چرا از؟ اون بدگویی یا اون سخنگویی یا اون حرفی که پشت سر یوسف می زدن در اون جایی که یوسف نبود غیبتی که میگه چرا اسمش گذاشت مک چرا اسمش گذاشت توته چون هدف غیبت نبود که مجرد اینکه یه خبری گزارشی بیدن از یوسف بگن یوسف الان کار کرد نه هدف این بود که چه نقشه‌ای بکشن چه برنامه‌ای بچینن بر اینکه چطور از یوسف بهره برداری میکنن و بعدشم نشستم برنامه ریختن چطور پس الان انتقام را از یوسف بگیرن یوسفی که طاهر نیست اون رغبت هوس نفس منیشو رو اشباء بکنه در خدمتشون باشه چطور پس انتقام رو بگیرن قال ما خطب كنا اذا ودتنا يوسف عن نفسه پادشاه اونها رو میخواهد اون زنا رو ما بکن كنا اذا ودتنا يوسف عن نفسه چی چیز سبب شد که بر علیه یوسف توطئه بکنید چی بود قضیه تون با یوسف مسئله خیلی مهمه اینجا قاضی خود پادشاه پادشاه هم گفتیم نخبه چینی داره میکنه این نخبه رو نمیخواد دست بده این پیامبر الهی رو نمیخواد از دست بده میخواد برای خودش از یک طرفی میخواد تحقیق بکنه در خود ماجرا بالاخره یک طرف پرونده درباری از درباریانش بوده و اونم وزیر از وزراش عزیز مصر بوده عزیز مصرم در زندان انداختن یوسف هدف داشت چی هدفی؟ در پوش گذاشتن روی ماجرای جنایت زنش با ظلم کردن در حق یک مظلومی یک کسی را متهم کرد همون کاری که خود زلیخا گفتیم همم هم جریان میچرخه روی اون زن زن توته کرده بود زن رو به دست گرفته بود و اون مرد هم تابعه شده بود مرد هم زنش رو ست بکنه زنش رو از اتهامی که زنا زده بودن هر حرف حدیثا دور بکنه خب یوسف هم با ظلمی میکنه، در حقش کرده بودن با مظلومیت تمام به زندان انداخته شده پادشاه مثل از زنا میکنه که جریان چی بوده قل نحاش للاح ما علمنا عليهم من سو براءت یوسف ساطع میشه با زبانی که با زمان خود مجرمان جنایتکاران اون زنا جنایتکار کار بودن، جناحش هم این بود که یوسف را با مظلومیت تمام، با بیگناهی تمام به زندان انداخته بودن، مسئولان اینجا، اینجا با تابانش پس بدن حاشیه الله، ما علم نع الیه منسوخ. این شخص وری است. هیچ بدی ازش دیده نشده قالت امرادت العزيز الان حس, حس الحقان راوت تو عن نفسی و انه لمن الصادقین زلیقه اونجا میاد حاضر میشه و بعد میگه بله یوسف دار راست میگه یوسف بری هست من هستم که را مراوده کردم من هستم که اقرار به گناهش میکنه اقرار به جرم جنایتش میکنه من بودم که از او تقاضی اون فحشا رو کردم خب در این قصه در این جریان بعد از اینکه بعد از این مدت طولانی یوسف اینقدر سختی میکشه یوسف باید مسئولیتی به داده بشه بعد از اینکه یک عالم بود برای تعبیر خوابی بعد از اینکه یک وزیری یک برنامه ریزی برای یک امپراتوری بود الان باید زمام امور امپراتوری مصر را به آهده بگیره چون لیاقتش رو داره هر کسی هر نخبه ای که لیاقت مسئولیت رو داره باید انسان به جای خودش بسپاره و اونم وظیفه مسئول که در اون مقام بالا قرار گرفته برخلاف اون چیزی که امروز ما میبینیم هر شخصی که مسئولی میاد فقط به قوم و ایل و تبار خودش میاد سر کار نگاه اهلیت‌ها نمیکنه، نگاه نخبه‌ها نمی‌کنه نخبه‌چینی نمیکنه، بررسی نمیکنه. اطلاف چیزی که ما می‌بینیم یک شخص یک بار دوزی میکنه به جایی که توبیخ بشه به جایی که مسئولیت ازش گرفته بشه مسئولیتی بالاتری بهش داده میشه و همچنان این روندها در ظلمها هست روندها هست و دود این تابانش رو باید مردم پس بدن در مقابل این نمیگن بیلیاقتی هرچه که بیلیاقتی هست یعنی کسی که نالایقه یک پست منصبیه وقتی که در اونجا گذاشته بشه واقعا نالایقه لیاقت اونو نداره تابانشو باید مردم پس بدن و در مقابل این نوع رفتارها مردم وظیفه دارن وظیفه دارن بنوان وظیفه که به فکر دنیاشون باشن و توقع هم نداشته باشن که اون عالم یا رهبر دینی بیاید در امور دنیاشون دخالت بکنه یسوف دخالت نکرد یسوف نرفت جلو عالم بود پادشاه نیاز پیدا کرد رفت طرفش عالم بزیفش ارشاده، بزیفش تنی تکلیف کردن نیست، تحمیل کردن نیست، بزیفش ارشاده. عالم راهنمایی میکنه. به خاطر همین وقتی که در زمان رسول الله علیه و بحث نخل بود، بحث ایوار کردن خودمون میگیم لقاح. دادن نخل ها بود، که لقاح بدن، از نخل نر بگیرن به ماده بدن. و ما در نظر رسول الله زنده گفتیم چی کاری داری این همه درخته کسی لقاح نمیکنه، ایوار نمیکنه. شما چرا این کار میکنی؟ صحابه هم کردن گفتند خب واش کاش ما هم دی که خلاص امر نداد اومدن شکایت گله یده سر رسول الله صلی الله علیه و سلام چرا نخوام وسالر نداد قال انتم اعلموا بعمور دنیا کو دنیای شماست باید بدونید که این چرا این لقاح میکنید این ایواره را چرا انجام میدید از نر میگیرید به ماده میدید از اون سمرش شما باید بدونید چرا این کارا را انجام میدید شما خودتون به دنیای خودتون آگاه ترید میگم من اومدم که دنیا براتون مشخص بکنم تا این تکلیف بکنم در دنیاتون پس رسول الله صلی اللہ و آله یک مرشد دینی بود بله اون چیزی که به ضرر دین و دنیا تمام میشه میگه بهشون ربا حرامه به ضرر اون مستزعفه اون فقیر مستمند مسکینه حرامه ظلم ربا درست معامله از امر دنیاویست ولی لطمه به دین میزنه ولی یه سری جاها نه دنیای محض ربایی نیست حرامی نیست کارکاسیبی کشت زراعت دام تو دنبال این نباش که عالم بیاد راهنمایی بکنه که چگونه کود بدی چگونه نمیدند دامت رو پرورش بدید نه این کار عالم نیست عالم آچار فرانسه نیست میگه خودمون که هر کاری از دستش بر بیاد ارشاد میکنه راه خطار رو نشون میده میگه این حلاله این حرامه ولی اینکه تو اون ارشاد رو بگیری اون دیگه مسئولیت خودته اون وظیفه خودته که اون راهنمایی را انجامش بدی یا انجامش ندی و ببینی به مصلحت دین و دنیا هست یا نیست سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده صلی الله علی, محمده، علی محمده.